چه بسا باید به یاد بیاوریم که اتهامات مربوط به نابه هنجاری تا چه حد منطقی و تاریخی هستند؟ برای کاستن از سلطه این اتهامات فقط لازم است به تنوع آداب و رسوم در طول زمان و مکان توجه کنیم. آنچه در زمانی معین در گروهی، نابه شمرده می شود، ممکن است اینگونه انگاشته نشود و حتما همواره اینگونه انگاشته نمی شود. ما میتوانیم در افکار خود از مرز ها باگذاریم. مونتنی کتابخانهش اش را با کتاب هایی پر کرده بود که به او در گذر از مرزهای تعصب کمک می کردند در آن کتابخانه کتاب های تاریخ سفرنامه ها گزارش های مبلغان مسیحی و ناخداها ادبیات دیگر ملل و کتاب های مصور همراه با تصاویری از قبایلی وجود داشت که به شکل عجیبی لباس پوشیده بودند و ماهی هایی می خوردند که اسم آنها معلوم نبود از طریق این کتاب ها منتنی میتوانست مشروعیت بخشهایی از وجودش را اثبات کند که در آن مجاورت هیچ شاهد و گواهی نداشتند. بخش های رومی، بخش های یونانی، جوانبی از خودش که بیشتر مکزیکی و توپیایی بودند، تا گاسکونی بخش هایی که دوست داشتند شش زن داشته باشند یا پشت خود را بتراشند یا روزی دوازده بار هم مام کنند. او، با مطالعه سالنامه های تاکیتوس، تاریخ چین گانزالس دومندوسا، تاریخ پرتغال گولارت، تاریخ ایران لبلسکی، سفرنامه های آفریقای لئوی آفریقایی، تاریخ قبرس لوسینیانو، مجموعه تواریخ ترکیه و شرق اثر پستل و کیهان نگاری جهانی مونستر، شامل تصاویلی از حیوانات بیگانه، میتوانست از احساس بیگانگی خود با این خصایص بکاوت. اگر منتنی از دعاوی دیگران به حقیقت جهان شمول احساس سرخوردگی میکرد، میتوانست به شیوهای مشابه نظریات تمام فیلسوفان بزرگ دوران باستان درباره جهان را ردیف کند و سپس به رقم اطمینان هر کدام از آنها به تملک کل حقیقت اختلافات مزهک میان آنها را نشان دهد. پس از این مطالعه تطبیقی، مونتنی با لحن تمسخرآمیزی اعتراف کرد که هیچ دلیلی وجود ندارد که نظریه های زیر را بپذیرد. مسول افلاتون جزء الای تجزای اپیکور خلا و ملأ لیوکیپوس و دمکریتوس مادت المواد بودن آب از نظر تالس نامتناهی بودن طبیعت آناکسیمندر ماده اسیریه دیوگنس اعداد و تناسب فیساغورس، نامتناهی بودن پارمنیدس، وحدت مسایوس، آب و آتش آپولو دروس، همگون یا همبهره آناکساگورس، سازگاری و ناسازگاری امپدوکلس، آتش هرکلیتوس، یا هر عقیده دیگری برخواسته از آشفتگی نامحدود قضاوتها و آموزهای به شدت آشفتهی حاصل از عقل نازکتب بشری ما، با تمام قطعیت و وضوحش اکتشافات دنیاهای نو و موتون باستانی آن نخوت اندوهناک و ستیزجوی را که اعتقاد و اعتماد کاملی به خود دارد به شدت تزعیف کرد هرکس کس که مجموعه هوشمندانه از هماغتهای ابلهانه حکمت بشری را گردآوری کرده داستان شگفت آوری دارد که تعریف کند وقتی چنین خطاهای آشکار و بزرگی را حتی در این شخصیت‌های مهمی بینیم که هوش بشری را به قله‌های رفیعی می می‌توانیم بگوییم که چه تصوری باید از انسان و حس و عقل او داشته باشیم. مسافرت 17 ماهه بر روی اسب به دور اروپا باید مفید بوده باشد. مشاهده دیگر کشورها و سبک‌های زندگی، حال و هوای خفه کننده و طاقت فرسای منطقه زندگی منتنی را کاهش داد. آنچه به نظر جامعه عجیب بود به نظر جامعه دیگر به طرز مناسبتری به هنجار شمرده میشد. دیگر سرزمینها می توانند سعه صدری را در مازنده کنند که نخوت منطقه ای آن را سرکوب کرده است. این سرزمینها ما را ترقیب می کنند تا بیشتر پذیرای دیگران باشیم. مفهوم امر به هنجار در هر منطقه خاص، آتن، آکسبورگ، کوسکا، مکزیک، روم، سویل، گاسکونی فقط معدودی از جنبههای ماهیت ما را دربر میگیرد و نمونه دیگر دیگر جنبهها را وحشیانه و عجیب میشمارد. هر انسانی میتواند صورت کامل شرایط انسانی را در بر داشته باشد، ولی به نظر میرسد که هیچ کشور واحدی نمیتواند پیچیدگی این شرایط را تحمل کند. در بین پنجا و هفت نقل قول نوشته شده بر روی تیرهای سقف کتابخانه منتنی جمله‌ای از ترنس به چشم می‌خورد. من انسانم. هیچ چیز انسانی برای من بیگانه نیست. مونتنی ما را دعوت می‌کند که با مسافرت به کشورها در عالم واقع و در خیال، تعصبات محلی و تفرقه های حاصل از آنها را با هویت های نامحدودتری در قالب شهروندان جهان، محافظه کنیم. یک تسلی دیگر در مواجهه با اتهامات مربوط به نابهنجاری دوستی است. یکی از ویژگی‌های دوست این است که آنقدر مهربان است که در مقایسه با اکثر مردم، بخش بیشتری از وجود ما را به بهنجار میداند. هنگام گفتگو با مخاطبی عادی، بسیاری از نظرهای خود را به دلیل بسیار زننده بودن، جنسی بودن، معیوسانه بودن، احمقانه بودن هوشمندانه بودن یا احساساتی بودن بیان نمیکنیم ولی این نظرها را با دوستان خود در میان میگذاریم دوستی توطعهای کوچک است علیه آنچه دیگران معقول می‌پندارند. منتنی مثل اپیکور دوستی را معلفهٔ ضروری خوشبختی میدانست به باور من شیرینی مصاحبت رفیقی مناسب و دمساز هرگز به ضرر کسی تمام نمی‌شود. یک دوست چقدر این قضاوت دوران باستان درست است که معاشرت با کسی گواراتر از انصار آب و ضروریتر از انصار آتش است مونتنی تا مدتی آنقدر خوشبخت بود که چنین دوستی داشته باشد در 25 سالگی با ایتین دولابو اسی نویسنده 28 ساله و عضو پارلمان بردو آشنا شد دوستی در نگاه اول به خاطر چیزهایی که شنیده بودیم پیش از اینکه یکدیگر را ببینیم دنبال هم میگشتیم. با ذکر نام هم یکدیگر را در آغوش گرفتیم و در نخستین ملاقات که تصادفاً در یک جشن شهری شلوغ اتفاق افتاد چنان خود را مجذوب، آشنا و وابسته به هم یافتیم که از آن زمان به بعد چیزی به اندازه ما به ما نزدیک نبود. این دوستی از آن نوع دوستی هایی بود که به اعتقاد مونطنی فقط هر سیصد سال یک اتفاق میافتد این دوستی هیچ و چه اشتراکی با ارتباطات نیم بندی نداشت که اغلب این واژه بر آن دلالت می کند. آنچه معمولا دوست و دوستی میخوانیم چیزی بیش از نوعی آشنایی نیست که بر حسب تصادف یا نوعی مناسبت به وجود آمده که به وسیله آن ارواح ما از یکدیگر حمایت می کنند. در دوستی مورد نظر من، ارواح در چنان ترکیب آم می در هم می که درزی که آنها را به هم می به کلی ناپدید و محف می شود دوستی چندان ارزشمند نمی بود اگر بیشتر مردم آنقدر معیوس کننده نبودند اگر منتنی مجبور نبود بخش امدهی از وجود خودش را از آنها پنهان کند جرفای پیوند او با لابو اسی نشان میداد که در تعامل با دیگران تا حد مجبور شده بود فقط تصویر تحریف شدهی از خودش را ارائه کند تا از سو و بالا انداختن ابرو در امان بماند سالها بعد مونتنی منشأ عواطف خود نسبت به لابوئسی را تحلیل کرد فقط او این موهبت را داشت که تصویر واقعی من را بشناسد. یعنی لابوئسی به طور منحصر به فردی در بین آشنایان مونتنی او را به خوبی می شناخت لابوئسی به مونتنی اجازه داد خودش باشد از طریق هوشمندی روانشناختی منتنی را قادر به این کار ساخت او به ابعاد ارزشمند و با این حال تا آن هنگام نادیده گرفته شده شخصیت منتنی مجال خودنمایی داد که این نشان می دهد ما دوستان خود را نه فقط به دلیل مهربان و سرگرم کننده بودنشان بلکه شاید مهمتر از آن به دلیل اینکه خود واقعی ما را می فهمند انتخاب می کنیم این دوران خوشی کوتاه چهار سال پس از اولین ملاقات در اوت 1563 لابوئسی بیمار و مبتلا به معده درد شد و چند روز بعد جان سپرد فقدان او منتنی را تا آخر عمر اندوگین ساخت در واقع اگر بقیه عمرم را با آن چهار سالی مقایسه کنم که از موهبت مصاحبت و رفاقت شیرین چنین مردی بهره من بودم چیزی نیست مگر دود و خاکستر شبی زلمانی و ملالآور از آن روزی که او را از دست دادم فقط به زور و با ملالت به زندگی ادامه می دهم. در سراسر مقالات می بینیم که منتنی به دنبال رفیق شفیقی است که با دوست از دست رفتش قابل مقایسه باشد 18 سال بعد از مرگ لاباسی مونتنی همچنان گاهی اندوهگین او شد در مه 1581 در لاویلا نزدیک لوکا محل حمام آب گرم مونتنی در سفرنامهش نوشت که یک روز کامل اسیر افکار دردناک درباره آقای دولابوئسی بوده است آنقدر در این حالت بودم بدون هیچ گونه بهبود که بسیار لطم خوردم. مونتنی دیگر هرگز در دوستیهایش رنگ خوشبختی را به خود ندید ولی بهترین راه جبران این فقدان را پیدا کرد او در مقالات در قالبی دیگر تصویر واقعی خود را باز کرد. همان تصویری که لابو اسی دیده بود. همانطور که در مصاحبت دوستش خودش بود، روی صفحه یک کاغذ هم خودش شد. واکنش اطرافیان منتنی به کتابش او را سرخورده کرد. ولی بسیار امیدوار بود که کس دیگری در جایی دیگر او را درک کند. مخاطب او همه کس بودند. نه هیچ کس خاصی. او از ناسازه نمایش جرفترین ابعاد خود به بیگانگان در کتاب فروشی ها آگاه بود. بسیاری از چیزهایی را که نمیخواهم به طور خصوصی به کسی بگویم به همه گان میگویم و برای شناختن مرموزترین افکارم وفادارترین دوستانم را به بساط کتاب فروش حواله می کنم. ولی باید سپاسگزار این ناسازه باشیم. کتاب فروشها ارزشمندترین مقصد افراد تنها هستند. گواه این امر تعداد کتاب‌هایی است که علت نگارشان این بوده که نویسندگانشان کسی را برای حرف زدن پیدا نکرده‌اند شاید منتنی برای کاهش احساس تنهایی خودش شروع به نوشتن کرده باشد ولی کتابش میتواند احساس تنهایی ما را هم کاهش دهد تصویر صمیمی و صادقانه فردی از خودش که در آن به ناتوانی جنسی و نفخ کردن خود اشاره می کند و از دوست مردهش می و توضیح می که در دست شویی به سکوت نیاز دارد ما را قادر میسازد تا کمتر احساس کنیم که آن جنبه هایی از خودمان که در معاشرتها و تصاویر به هنجار ناگفته میمانند غیرعادی غیر هستند همان جنبه هایی که به نظر می رسد، به اندازه دیگر جوانب بخشی از واقعیت ما را تشکیل می دهند.